فصل هشتم پس آنها همه به خانههای خود رفتن، اما عیسی به کوه زیتون رفت، و صبح زود باز به معبد آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول شد. در این وقت ملایان و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند آنان به او گفتند ای استاد این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسا در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند اما تو در این باره چه میگویی؟ آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند اما عیسی سر به زیر افکن و با انگشت خود روی زمین مینوشت. ولی چون آنان به اصرار به سؤال خود ادامه دادن، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت، آن کسی که در میان شما بیگناه هست، سنگ اول را به او بزند. عیسی با سر خود را به زیر رفتند و بر زمین مینوشت. وقتی آنها این را شنیدن، از پیران شروع کرده، یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت، آنها کجا رفتن؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت، هیچ کسی آقا. ایسا گفت، من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن. ایسا باز به مردم گفت، من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت. فریسیان به او گفتند تو درباره خودت شهادت می دهی. پس شهادت تو اعتباری ندارد. ایسا در پاسخ گفت: «من حتی اگر بر خود شهادت بدهم شهادتم معتبر است. زیرا من میدانم از کجا آمدم و به کجا میروم؟ ولی شما نمی دانید که من از کجا آمدم و به کجا می روم؟ شما از نظر انسانی قضاوت می ولی من درباره هیچ کس چنین قضاوت نمیکنم. اگر اگر قضاوتم بکنم قضاوت من درست است چون در این کار تنها نیستم بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است در شریعت شما هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است یکی خود من هستم که خود شهادت می دهم و شاهد دیگر پدری است که مرا فرستاد به او گفتند پدر تو کجاست عیسی پاسخ داد شما نه مرا میشناسید و نه پدر مرا اگر مرا میشناختید پدرم را نیز میشناختید عیسی این سخنان را هنگامی که در بیت المال معبد تعلیم میداد گفت و کسی به طرف او دست راز نکرد زیرا وقت او هنوز نرسیده بود باز عیسی بهشان گفت من میروم و شما به دنبال من خواهید گشت ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند وقتی میگوید به جایی که من میروم شما نمی توانید بیایید؟ آیا منظورش این است که میخواهد خودش را بکشد؟ ایاب آنها گفت شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مورد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم در گناهان خود خواهید مرد آنان از او پرسیدن تو کی هستی؟ عیسی جواب داد من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم اما فرستنده من حق است و من آنچه را که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل ایسا بانان گفت، وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است، سخن می گویم، فرستنده من با من است، پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان، بسیاری به او گرویدن سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودن گفت اگر مطابق تعالیم من عمل کنید در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبودیم. مقصود تو از اینکه که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ ایسا به ایشان گفت یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده یک گناه هست و برده همیشه در میان اهل خانه نمی ماند ولی پسر همیشه می ماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد واقعا آزاد خواهید بود. میدانم که شما فرزندان ابراهیم هستید اما چون سخنان من در دل شما جایی ندارد میخواهید مرا بکشید. من در آنچه در حضور پدر دیدم سخن می گویم و شما هم آنچه را از پدر خود اید انجام می دهید. آنها در پاسخ گفتند: ابراهیم پدر ماست. عیساب آنها گفت اگر فرزندان ابراهیم می بودید اعمال او را به جا می آوردید. ولی حالا می مرا بکشید در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیدم به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. آنها به او گفتند ما حرامزاده نیستیم ما یک پدر داریم و آن خود خداست عیسی با آنها گفت اگر خدا پدر شما می بود مرا دوست می داشتید زیرا من از جانب خدا آمدم و در بین شما هستم من خود سرانه نیامدم بلکه او مرا فرستاد چرا سخنان مرا نمیفهمید برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید، شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بیخبر است، چون در او هیچ راستی نیست، وقتی دروغ می گوید مطابق سرشت خود رفتار می نماید، زیرا دروغو و پدر تمام دروغ هاست. اما من چون حقیقت را به شما میگویم، به من ایمان نمیآورید. آورید از شما میتواند گناهی به من نسبت دهد پس اگر من حقیقت را میگویم چرا به من ایمان نمیآورید؟ آورید کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش میدهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید چون از خدا نیستید یهودیان در جواب به او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ ایسا گفت من دیو ندارم بلکه به پدر خود احترام می گذارم. ولی شما مرا بی حرمت می سازید. من طالب جلال خود نیستم کس دیگری است که طالبان است و او قضاوت می کند. یقیم بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. یهودیان به او گفتن حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه پیامبران مردن و ای تو میگویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مردن بزرگتری؟ فکر میکنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد اگر من خود را آدم بزرگی بدانم این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال میبخشد. همان کسی که شما میگویید خدای شماست، شما هیچ و او را نشناخته ای. اما من او را میشناسم و اگر بگویم که او را نمیشناسم مانند شما دروغگو خواهم بود ولی من او را میشناسم و آنچه میگوید اطاعت میکنم پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد یهودیان به او گفتند تو هنوز پنجاه سال هم نداری پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ ایسا به ایشان گفت یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت.